همونطوری که بارها به این موضوع اشاره کردیم شما به صورت روزمره در حال هیپنوتیزم کردن خودتون هستید یعنی اینکه از صبح که بیدار میشید با تصوراتی که به ذهنتون میارید به صورت ناخودآگاه هم هست معمولا یعنی شما دونه دونه اینا رو در واقع انتخاب نمی کنید ناگهانه عادت کردید که هی یاد رویدادهای منفی زندگیتون بیافتید یاد دوایی که اخیراً داشتید بیافتید یاد در واقع قستی که آخر ماه دارید بیافتید و وقتی این کارو میکنید شما در واقع دارید هر بار توی ذهنتون میرید به اون لحظه خاص و توی ذهنتون عمیقا و انگار با چشمای خودتون میرید توی اون لحظه که اه رسیده سر ماه و من پول ندارم و شما دارید این رو دائم تکرار میکنید و چیزی که تکرارش میکنید چیزی که تصویر سازیش میکنید چیزی که حسش میکنید عمیقا و درگیرش میشید و در واقع کاملا تو اون تجربه شرکت میکنید رفته رفته باورش براتون شکل میگیره یعنی عرض کردم یکی از تعاریف هیپنوتیسم که وقتی شما باور چیزی براتون شکل میگیره در واقع دارید روی اون خودتون رو هیپنوتیزم میکنید و اون چیز در واقع به دست زمیر ناخودآگاهتون واقعا رخ میده این زمیر ناخودآگاهی که ن... 95 درصد بدنتون و وجودتون رو تحت کنترل خودش داره یه جوری همه چیز رو پدید میاره و رفتارهای شما رو حتی یه جوری میکنه انرژی شما رو و جذبی که به صورت متافیزیکی دارید و روی که جذب می کنید رو جوری میکنه که شما واقعا اون بلایی که روش خودتون رو هپنتیزم دارید می کنید رخ بده و بنابراین خیلی مهمه که این چرخه رو معرکوس کنید. مکوس کردن این چرخه اینطور شکل پذیره که از همین لحظه دونه دونه هوشیار باشید به چیزهایی که دارید متصور میشید تو زنتون دارید حسش می کنید. و بعد اون رو دقیقا برعکسش کنید به صورت ارادی چیزهایی رو بیاید، تمرکز و احساس کنید و توجهتون رو روی چیزهایی بذارید که دقیقا جهت مثبت و درجهت اون چیزی که میخواهید تصابه این ترتیب شما دارید این چرخر رو محکوس میکنید